هشتم اسلام سوار گاری از میدانچه پشت مشتی سفر پیدا شد و آمد کنار استخر پیدا شد و مالبندها را شل کرد و سطن را از زیر گاری در آورد خم شد از آب پر کند که صدای مشتی بابا تو هوا پیچید آی مشت اسلام، آی مشت اسلام اسلام برگشت و مشتی بابا را دید که سرش را از سوراخ بالای در آورده بیرون و او را صدا میزند. زند را گذاشت روی گاری و مشتی بابا را نگاه کرد و دستش را گرفت دو طرف دهان و داد زد آی آی مشتی بابا مشتی بابا از آن بالا گفت دو نفر اومدن و عقب تو می گردن. اسلام گفت عقب من مشتی بابا گفت آره دوتا جوان سیدابادی ندیدیشان اسلام گفت چی می مشتی بابا گفت شاه فرستاده سراغت وقتی دیدن نیستی رفتن صحرا ندیدیشان و سرش رو برد تو اسلام با خود گفت شاه چه کارم داره و برگشت سرگاری که پسر سر مشی سفر با دو جوان سیدابادی از کوچه دوم پیدا شدند پسر مشی سفر گفت مشی اسلام اومده اونهاش سیدابادی آمدن جلو و پسر مشی سفر هم آمد و ایستاد پشت سر سیدابادی ها. پسر مشی سفر گفت مشی اسلام این دوتا از سیداباد اومدن سراغ تو یکی از سیدابادی ها گفت شاه تقی ما را فرستاده اسلام پرسید چه کارم داره؟ سیدابادی دوم گفت شاه تقی گفته که سازتو برداری بریم سیداباد اسلام گفت چه خبره؟ سیدابادی اول گفت عروسی پسرشه گفته که بری و ساز بزنی اسلام گفت کاروبار اما چه بکنم پسر مشی سفر گفت کاراتو ولش کن سیدابادی دوم گفت عروسی که تموم شد برمیگردی سر کار اسلام گفت چند روز طول میکشه سیدابادی اول گفت سه روز بیشتر طول نمیکشه شاه گفته که حتماً ببریمت اسلام فکر کرد و گفت پس من سری به کت خدا میزنم و بر میگردم اسلام رفت توی کوچه دوم. سیدابادی ها رفتند و نشستند روی سنگ سیاه مردشوری. پسر مشی سفر گفت خانه کت خدا همین نزدیکی هاست. همین الان برمیگرده می گرده. سیدابادی اول گفت تا برگرده ما هم میشینیم اینجا. سیدابادی دوم به پسر مشی سفر گفت تو چی؟ نمیخوای بیای؟ بیای؟ سیدابادی اول گفت آره بیا. خیلی بهت خوش میگذره. پسر مشیصفر گفت شاتقی اوقاتش درخ نمیشه؟ سیدابادی اول گفت اولا که شاتقی اوقاتش درخ نمیشه بعدشم هم که مهمان خیلی زیاد و متوجه نمیشه تازه شاتقی شبها خوب نمیبینه سیدابادی دوم گفت میایی؟ پسر سفر گفت میام برم به خونه خبر بدم و بیام و رفت طرف خانهش اسلام که بریشت ادهی جمع شده بودند دور کاری. اسلام گفت را بیافتیم بریم. سید اول گفت سب مش جفرم بیاد. اسلام گفت میخواد چه کار بکنه؟ سید دوم گفت قرار شد بیاد دروسی. اسلام گفت پس من برم و سازم رو بیارم. و از بین جماعت راه باز کرد و رفت طرف خانش. پنجره را باز کرد و رفت تو. بزه سیاه. نشسته بود جلوی دربچه پستو و بیرون را تماشا می کرد اسلام را که دید، بلند شد و آمد جلو. اسلام سازش را از گلمیخ برداشت و از پنجره آمد بیرون. باز سیاه هم از پنجره آمد بیرون. هر دو رفتند و رسیدند کنار گاری. زیدآبادی اول گفت: چه ساز گنده‌ای داره این مش اسلام؟ اسماعیل گفت: عین تفنگ ژاندارماس. اسلام خندید و چیزی نگفت. سازش را همایل کرد و سطر را از روی گاری برداشت و آویزان کرد به چنگال زیر گاری و به اسماعیل گفت بزو ببر خونت تا من برگردم. اسماعیل رفت جلو و شاخ بز را چسبید. اسلام نشست جای سورچی و رو کرد به سید و ها و پسر مشتی سفر که آمده نشسته بود کنار سید گفت خب دیگه سوار بشین را بیافتیم. زیدابادی اول گفت: حتی نمیذاره که چپاقی چاق بکنی. زیدابادی دوم خندید و گفت: مش اسلام خیلی بیشتر از من و تو عجله داره. کیسه توتنش را آورد و داد به پسر مشی سفر که چپاقش را درآورده بود چاق بکند. اسلام از گاری پیاده شد و رفت نشست لبه استخر و پشت کرد به مردم و گفت: هر وقت که کارتان تمام شد خبرم کنید. و به عکس خودش نگاه کرد که توی آب افتاده بود. و دسته سازش مثل توفنگ از بالای شانه بالا آمده بود. به سر مشی سفر چشمک زد. اول سید خندیدند و بعد جماعتی که دور گاری بودند. اسلام نشسته بود جای سورچی و شلاق را دور سر چرخاند و به سید نزدیک می شد. سیدابادی نشسته بودند کنار اسلام و پسر مشی سفر چنباتمه زده بود وسط گاری و زانوهایش را جمع کرده بود توی شکم سیداباد که از دور پیدا شد اسلام سهگرمههایش را باز کرد و برگشت و جوانها را نگاه کرد سیدابادی که فکر می کردند مشتی اسلام اوقاتش است نیششان تا بناگوش باز شد پسر مشی سفر برگشت و آن ستا را نگاه کرد. سیدابادی اول به پسر مشی سفر چشمک زد. اسلام گفت: راستی شاه تقی برای کدام بذری سنگ گرفته؟ سیدابادی دوم گفت: شاه تقی که یه پسر بیشتر نداره. اسلام گفت: آره راست میگی. راستی اسمش چی است؟ سیدابادی دوم گفت: مش شفی بهش میگن. پسر مشی سفر سرش را تکان داد و گفت: مشفی مشعفی ها خندیدن اسلام گفت دختر کی رو گرفته زیدابادی دوم گفت میخوای چه کار بکنی مش اسلام زیدابادی اول گفت می‌خواد بشناسدش پسر مشی سفر گفت مش اسلام میخوای بشناسیش اسلام شانه بالا انداخت و گفت چه میدونم زیدابادی اول گفت دلخور نشو مش اسلام دختر عمو زینال را گرفته اسلام گفت خدام عمو زینال سیدابادی اول گفت همون که سال گذشته افتاد تو چاه و مرد دختره پیش همشه مشکی رقیه همان زن خکیه میشناسیش که پسر مشی سفر سرش را تکان داد و گفت مشکی رقیه سیدابادی دوم گفت مشکی رقیه خودش کلی خواستگار داره اما نمیخواد شوهر بکنه اسلام گفت تا حالا شوهر نکرده؟ سیدابادی دوم گفت: چرا؟ شوهرش مرده و دیگه شوهر نکرده. بچه‌م که نداره. پسر مشی سفر گفت: مشتی رقیه را شاه بگیره واسه خودش. سیدابادی اول گفت: شاه که واسه خودش زن و بچه داره. مشی رقیه که نمیخواد شوهر بکنه. پسر مشتی سفر گفت: حتما یه مرد پولدار میخواد که شوهر بکنه. سیدابادی اول گفت: شوهر پولدار میخواد چه کار؟ رفته پیش گداخانوم و قسم خورده که دیگه شوهر نکنه. پسر مشی سفر گفت: چرا این کارو کرده؟ سیدابادی دوم گفت: که مردها دست از سرش بردارن. خودش همه چی داره، خونه، مزرعه، گاو، اسب، گاری. شوهر میخواد چه کار؟ پسر مشی سفر گفت: اسب و گاو که نمیتونن کار شوهر را بکنن. سیدابادی ها خندیدن. پسر مشی سفرم به خنده افتاد. اسلام که نزدیک سید آباد رسیده بود، گاری را نگه داشت و سگرمه را توهم کرد و سید ها را نگاه کرد و گفت برای چی می خندین ها؟ و پسر مشتی سفر اسلام را نگاه کردند و سید ها که دیدند اسلام و قاتش ترخ شده جلوی خندشان را گرفتند. پسر مشتی سفر گفت به تو نخندیدی مشتی اسلام؟ به مشتی رو خندیدیم سیدابادی ها دوباره و خنده افتادند. خانه شاه تقی اول ده بود و خانه های دیگر سیداباد بالاتر روی هم تلمبار شده بود شاه تقی رفته نشسته بود پشت بام و با اصا کلاخ را که برای غارت بلغور گندم می رم می جلوی در هیزام می شکست. پیرهن سبز و جلیغه زردی پوشیده بود. مادر مشرفی با چهار پنج پیرزن دیگر صندوق چوبی بزرگی را از پستو آورده بودند بیرون و توی کهانه دنبال چیزی می گشتند. ها پشت بام ها مشغول بودند میرفتند و می آمدن. خانه خانم خلوت بود. علم سیاه و کوچکی پشت بام آرام آرام تکان می‌خورد. خانه عروس چند بام بالاتر بود. از بام شاه تقی سه طویل رد می‌شد و میرسید به خانه عموز اینال و بالاتر به خانه مشتی رقیه که معجر فرسوده‌ای دور تا دور بامش کشیده بودند. مشتی رقیه نشسته بود پشت بام روی سنگ دستاس و گندم پاک می‌کرد و پاهایش را از سوراخ پشت بام آویزان کرده بود توی پستو عروس نشسته بود توی پستو تصویر را پاره کرده دانه‌هایش را به حاشیه پیراهنش میدوخت و هر چند دقیقه سایه بزرگ پاهای عمه را نگاه می کرد گفتاده بود روی دیوار و پستو را تاریک کرده بود عروس وقتی آخرین دانه تسبیح را دوخت امه پاهایش را از سوراخ کشید بیرون و به کلاغی که با سماجت دروبرش میپرکید پرکید فحش داد کلاغ پرید و نشست هاشیه بام شاهتقی و گردنش را دراز کرد و خیره شد به بساط جلوه شاهتقی شاهتقی حسار را انداخت طرف کلاغ حسار افتاد توی صندوقی که مادر مشتی شفی و پیر را می کاویدند. مادر مشی شفی با صدای بلند گفت چه خبره؟ مش شفی برگشت و نگاه کرد. شاه که بلند شد، گاری اسلام را دید و با عجله جلو رفت و خم شد پایین و داد زد: آمدند! مش اسلام را آوردن برگشت و به خانه عروس نگاه کرد و مشتی روغی را دید که آمده لب با و دستش را گرفته بالای چشماش و با خنده و خوشی با صدای بلند داد میزد آمد اومدن, اومدن! مشی روقی برگشت و با عجله سرش را از سوراخ پستو برد تو و گفت آمدن آمدن. مشی شفی تبر را گذاشت پشت در و رفت توی مطبخ مادر مشی شفی و پیرزنه آمدند جلوی در و بیرون را نگاه کردند صدای خنده سیدابادی ها و پسر مشی سفر از دور شنیده می شد. غذا را که خوردند شاه تقیی مشتی اسلام را صدا کرد. دو نفری رفتند بیرون. شاه تقی به اسلام گفت این کیه با تو آمده. اسلام گفت پسر مشتی سفره. شاه تقیی گفت تو آوردیش اینجا؟ اسلام گفت خودش اومده من نیاوردمش آوردمش. شاه تقی گفت آدم خوبی نیست. میشناسمش عادت داره به دست و پای همه بپیچه. اسلام گفت آره خیلی شره شهتقی فکر کرد و گفت میدونی مشت اسلام؟ امشب عروسی مشتی شفی است. میخوام همه کاره عروسی تو باشی شبها من چشمام خوب نمیبینه میترسم که شلوغ بشه یا کسی به مهمانها نرسه اسلام گفت خاطر جمع باش شهتقی در کتایی را باز کرد و رفت تو و با دست به اسلام اشاره کرد دوتایی پله ها را بالا رفتند و رسیدند به دربچهی که در سقف کار گذاشته بودند دربچه را باز کردند اول شاه خودش را کشید بالا و بعد اسلام رسیدند به اتاق بزرگی که پنجرهای چهارگوش کوچکی داشت اسلام نگاه کرد جلوی پنجره دیوار بلندی بود و در دل دیوار میخ بزرگی کبیده بودند و تناب کتایی را بسته بودند به میخ شاه تقی رفت بالای اتاق و در کوچه‌ای دیگری را باز کرد. اول خودش و بعد اسلام رفتند تو. اتاق چهارگوشی بود که پنجره نداشت. از سوراخ وسط سقف روشنایی غروب می‌آمد تو. کنار دیوار خم بزرگی گذاشته بودند و نردبان کوچکی را تکیه داده بودند به کمر خم. دو تا پیت حلوی آنجا بود. شاحتقی دستش را زد به خم و گفت، میبینیش؟ اسلام خندید. شاحتقی گفت، برو بالا یکی از پیتها را پر کن. اسلام رفت بالا و در خمره را باز کرد و شاحتقی یکی از پیتها را داد بالا. پایین آمدند، پیت را گذاشتند پشت در. اسلام دهنش را پاک کرد، آمدند بیرون. شاحتقی در را غفل کرد. اسلام که گیجی مطبوعی سراغش آمده بود سازش را برداشت و با شاهتقی آمدن توی اتاق بزرگ. مهمانها آمده همه جا را پر کرده بودند. عدهای زیادی هم نشسته بودند روی ایوانها. صدای زنها از اتاق بغلی بلند بود. شاهتقی پرده را کشید صنهها در را باز کردند. اسلام تلو تلو خوران رفت بالای اتاق و نشست روی چهارپایه بزرگی که برایش گذاشته بودند و شکم ساز را بغل کرد و دستش را گذاشت روی سیمها و گفت مبارکی و سلامتی عروس و داماد صدای خنده پسر مشتی سفر و دو جوان سیدابادی از گوشه دیگر اتاق بلند شد اسلام چند لحظه بهت زده به خنده ها گوش داد و یک دفعه هر پنج انگشتش را روی سیمها پایین آورد صدای ساس که بلند شد مهمانها جا, به جا شدند و کف زدند و عروسی شروع شد غیر از اسلام سه نفر دیگر هم آواز خواندند، اما هیچکس مثل اسلام خوب آواز نخواند. هر بار که صدای اسلام بلند می خنده پسر مشتی سفر و دو جوان سیدابادی اتاق را پر می کرد. شب که شد، هیاهوی مهمان ها بیشتر شد. اسلام و مشتی در دایی مشتی شفی چند دفعه پله ها را بالا رفتند و با پیت پر آمدند پایین. شاهتقی نشسته بود روی ایوان و پایش را آویزان کرده بود و بی جهت می خندید و غش و ریسه می رفت. زنها پرده را کنار زده، از بین مردها می رفتند و می آمدند. مدتی که گذشت مادر مشتی شفی برای خود راه باز کرد و آمد پهلوی اسلام و در گوشش گفت حالا وقتش مشت اسلام اسلام پشت سر مادر مشی شفی رفت وسط زنها مادر مشتی شفی با صدای بلند به جماعت گفت پاشیم بریم عروس و بیاریم جماعت قیهه کشیدند و اسلام با صدای بلند گفت مبارکی و سلامتی و شروع کرد به ساز زدن سه تا پیرزن آمدند و ایستادند کنار مادر مشی شفی مادر مشی شفی گفت معطل نکنین، بریم تو حیات اسلام گفت چرا میوریشان تو حیات مادر مشی شفی گفت باید بریم خانه عروس اسلام گفت من با دیگران کار ندارم من تنهایی میرم تو حیات برگشت که برود پسر مشری سفر و دو جوان سیدابادی را دید که از توی اتاق مردها موازبش هستند و دیگر نرفت توی اتاق مردها. از همون پلاه چوبی جلوی پنجره رفت پایین. توی حیات کسی نبود. کنده چوبی بزرگی افتاده بود جلوی مطبخ. داخل مطبخ تاریک بود و سپیر زن ایستاده بودند جلوی اجاقها مواظب آتش زیر ها بودند. اسلام نشست روی کنده. آسمان پر بود از ستاره، نور سبز کدری از صحرا بلند بود. مادر مشی شفی از توی اتاق داد زد، های مشت اسلام، های مشت اسلام. مشت اسلام از روی کنده بلند شد و انگشتانش را رو کشید روی سیمها. صدای ساز که بلند شد، مردها از پله های طرف راست و زنها از پله های طرف چپ ریختند توی حیات. ها از مطبخ آمدند بیرون و اسلام رفت روی کنده. اتاقها خالی شد. شاه که تک و تنها نشسته بود روی ایوان با صدای بلند داد زد: "های مش اسلام، مش اسلام!" اسلام با صدای بلند گفت: "های شاه تقی، شاه تقیق! شاه تقیق گفت: کجای بابا؟ چرا از نفس افتادی؟" پسر مشی سفر و دو جوان سیدابادی خندیدند. اسلام از روی کنده پرید پایین و نعره کشید و ساز زد جماعت هل هل کنان به طرف کوچه راه افتادند از خانه مشتی رو که عروس را آوردند بیرون شلوغی بیشتر شد زنها جلو و مردها عقبتر راه می آمدند. عروس وسط چند تا پیر زن راه می آمد. و چند بچه پیشاپیش زنها با فانوس راه را روشن می کردند. وسط زنها دوتا مرد پیدا بود. مشتی شفی با لباس دامادی و اسلام که تلو تلو خوران ساز میزد و آواز میخواند و وسط جماعت زنها دیده می شدند. بین مشتی شفی و اسلام مشتی و غیه راه می رفت. مردها با قدمهای آهسته پشت سر زنها پیش می آمدند. آخرین کسی که از خانه مشیروقی آمد بیرون پیرزن همسایه در را بست و قفل زد خانه که خاموش شد روشنایی چراغ طبیله هم بیشتر شد موشهای توی مطبخ دم در جمع شدند و سرک کشیدند هم همه جماعت که دور شد ریختند بیرون و حجوم بردند طرف پله سر پیچ کوچه بیرزنی آمد و مشی شفی را کشید کنار و گفت تو بیا برو خانه کی به تو گفته بیای بیرون مشی شفی گفت همه آمدن و منم آمدم پیرزن گفت تو باید با چراغ بیای پیشواز عروس پیرزن و مشی شفی از بین جماعت گذشتند و دوان دوان رفتند پایین داماد که رفت اسلام آوازش رو برید مشی رقیه گفت خسته شدی مش اسلام اسلام دستهایش را آویخت و گفت خسته شدم بعد جوری هم خسته شدم مشتی روغیه گفت همش که تنها میخونی و میزنی؟ اسلام خندید و گفت هیچ کس نمیخواد کمکم بکنه مشتی گفت و نمیذارن که خستگیم در بکنی اسلام گفت خب دیگه عروسیه چه میشه کرد؟ مشتی گفت همش تقصیر این شاتقیه که دو روز زودتر نفرستاد دنبال تو اسلام گفت خب دیگه مشتی گفت با چی اومدی اینجا؟ اسلام گفت با گاری اومدیم مشروغیه گفت گاری مال کی بود؟ اسلام گفت دوتا جوون اومده بودن سراغ من که سوار گاری شدیم و اومدیم مشروغیه گفت گاری را میگم گاری مال کی بود؟ اسلام گفت بیال یه گاری بیشتر نداره و اونم مال منه مشروغیه گفت اسبشم هم مال خودته؟ اسلام گفت پس چی؟ مشروغیه گفت چند تا اسب داری؟ اسلام گفت یه دونه اسب دارم یه دونه گاری و یه دونه بز مشتی روغیه گفت دیگه چی داری؟ اسلام گفت یه هم خانه دارم پشت استخر. و اینم دارم سازش رو نشان داد مشتی روغیه گفت منم یه دونه خانه دارم یه گاری و سه تا گاب و دوتا اسب اسلام خندید و گفت خوبه مشتی روغیه گفت اما یکی از اسبام مریض و می ترسم بمیره اسلام گفت: چشه؟ هم همه جمعیت بیشتر شده بود. مشریقی گفت: نمیدونم چشه. اسلام گفت: حتما خوب میشه. مشریقی گفت: تو سیداباد هیچکس نفهمید که چشه. اسلام گفت: سیدوابادیا رو ول کن. مشریقی گفت: چند نفر اومدن و دیدنش؟ اول مشیر رضا اومد و چیزی نفهمید. چند نفر دیگه هم آمدن وسط طویلو و کاه آتش زدن و کوهنه آتش زدن و نتونستن کاری بکنن. اسلام گفت، اسب که مریض شد، باید ببندیش به گاری و ببریش صحرا مشتی رو گفت، اسب من دهنش باز مانده و خون از لب و می ریزه. غیر از آب، هیچ چیز دیگه هم نمیتونه بخوره. اسلام گفت، خون؟ خون دیگه چرا میاد؟ مشتی گفت، و نمیدونی چه خونی. یه دقیقاً بند نمیاد تو میتونی یه کاریش بکنی اسلام گفت چرا نمیتونم البته که میتونم مشروغیه با التماس گفت مشری اسلام کی میخوای این کارو بکنی اسلام گفت هر وقت که تو بخای مشروغیه گفت حالا که سرمو خیلی شلوغه بذار سرمو خلوت بشه خندید و زد به بازوی اسلام و گفت رسیدیم خونه داماد اسلام کاسه ساز را بغل کرد و در حالی که محکم به سیمها میزد شروع کرد به آواز خواندن. هم همه زنها که به گودال دم در سرازیر میشدند بلند شد و اسلام مشکی شفی را دید که زنبوری به دست نفس زنان اصله گودال به طرف جمعیت پیش میآید.